همچنان همراه هستید با برنامه خودتون گامی به سوی نور همکار گزارش کردم آقای حسین زیایی گزارشی رو تهیه کردن که در این لحظه دعوت میکنم بشنوید بسم الله الرحمن الرحیم الهی وفقنا نالما توهب و و ترزا. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه گامی به سوی نور مطلع شدیم چند روزه گذشته استاد برجسته قرآن استاد محمد جواد پور حسن در شهرستان کاشمر به رحمت خدا رفته امروز هم که روز پنج شنبه هست هفتمین روز از رهلت و ارتحال این استاد عظیم الشان در شهرستان کاشمر داره میگذره اما ارتباط برقرار کردیم با استاد سیدهانی تبا در شهرستان کاشمر از استادان برجسته قرآن در این شهرستان که سالیان سال شاگرد استاد فرحسن بودند و در کلاس این استاد تلمس کردند آیا تبا سلام عرض میکنم خدمت شما و ظهرتون بخیر باشه سلام و رحمت الله صبح شما من این فقدان بزرگ به جامعه قرآن کاشمر و به همه مردم نیکسرشت و قران دوستا شهرستان کاشمر و همه استاد میتونم تسلیت بگم و میخوام از خصوصیات اخلاقی استاد مرحوم جواد پور حسن قدری برای شنوندگان برنامه گامی به سوی نور توضیح بدید از اخلاص ایشون همین بس که با وجود اینکه ترکشهایی رو از جنگ تحمیلی بر پشت خودش به یادگار داشت ولی اقدامی برای استفاده از صهمیهٔ جانبازی خودش نکرد و وقتی از ایشون درباره علت این کار پرسش میشد با قاطعیت این پاسخ رو میداد که من برای این چیزها به جبهه نرفتم من معاملم با کسی دیگه‌ای بوده و اگه باز هم خدایی نکرده جنگی اتفاق بیفته به تعبیر خودشون با سر به میدان جهاد خاهمشتاف ایشون بسیجی مخلصی بود که طبعیت از ولایت فقیه و حمایت از ایشون منش زندگیش بود و این میتونه سرمش خیلی خوبی برای بسیجیان عزیز باشه که در ایام هفته بسیج هم هستیم از جمله خصوصیات دیگه این استاد عزیز که باعث شده بود محبوبیت خاصی بین شاگردهای خودش چه در کلاسهای خوشنویسی و چه در تدریس قرآن پیدا بکنه برخورد و خوش ایشون و نحوه تدریسیشون بود به نحوه که با استفاده از مثالهای زیبا و ساده برای تفکیم هرچه بهتر قرآن یا خوش به شاگرداش استفاده میکرد و همین شده بود که در طول سی و سال در محضر قرآن بودن و سالها بر بودن در, در دریای بیکران هنر اون هم هنری که بوی اخلاق داشت بوی اسلام و دین داشت شاگردان زیادی در اطرافش حلقه مزنند ما وقتی کناریشون بودیم فک نمیکردیم که ایشون فقط استاد ماست ما ایشون رو به عنوان پدر و دوست مهربان و امین و مورد اعتماد میپنداشتیم که از اون نه تنها درس خوشنویسی و قرآن بلکه درس زندگی میگرفتیم ایشون تقریبا از هر فرصتی برای انتقال اخلاقیات به شاگرداش استفاده میکردند و تا اونجایی که من یادم میاد عمد تذکر ایشون به شاگرداشون تحصیل علم و دانش بود در سطوح بالا و با قول خودشون میگفتند یک قارهٔ باثواد خیلی بهتر از یک قاری بی سواد هست و تذکر که ایشون نسبت به احترام به والدین به ماها می دادن. از جمله کارهای دیگه که ایشون انجام می دادن شخصیت دادن و ارزش قائل شدن برای شاگرداشون بود تا اونها هم کم کم بتونن که مستقلا در کارهای اجتماعی شرکت بکنن الان شما اساتید مختلفی که در سطح شهرستان ملاحظه میکنید دست پرورده این استاد هستن که این هر کدومشون خودشون یک وزنه فرهنگ قرآنی برای شهر به حساب میان سپاس هستن استاد سیدهانی توا طبع توایی از استادان برجسته قرآن در شهرستان کاشمر به روح تابناک همه استادان قرآنی که امروز در جمع ما نیستن درود میفرستیم و امروز هم که هفتمین روز در گذشت استاد محمد جواد پور حسن که من هم به عنوان عضو کوچکی افتخار در کلاس های درس قرآن ایشون رو داشتم توفیق با من حاصل شده بود و امروز هم به نیابت از همه شنوندگان عزیز و ارجمندی که نمیتونن و در مراسم هفتم در کاشمر شرکت کنن من در کاشمر حضور دارم و در هیات ابلفضی این شهرستان به نیابت از همه مردم خوب و قرآن دوستان به روح تابناک این استاد درود و سلام و تحیید رو تقدیم خواهم که سپاس هستم خدا نگه <mondoNetflix> ال یاد <matik spreads> و که همه خدم می رو گرامی می